بسم الله الرحمن الرحیم بنامه خداوندی بی مهربان نهایت بارش روز واقع شدنی یعنی قیامت چیست آن روز واقع شدنی؟ و چی چیست را آگاه گردانید که آن روز واقع شدنی چیست؟ قوم سمود و عاد روز کوبنده یعنی قیامت را تکذیب کردند اما سمود به وسیله سایقه هلاک شدند و اما عاد به وسیله تندباد سرد و سرکش هلاک شدند که آن را هفت شب و هشت روز قاطعانه بر ایشان برگماشت پس تمام آن مردم را در مسیر آن تندباد می دیدی که دراز به روی افتاده اند. گویا ایشان همچون تنهای درختان خورمای از بیخ کنده می باشند پس آیا از ایشان کدام کسی را می بینی که زنده باقی مانده باشد و فرعون و کسانی پیش از او و مردم شهرهای زیر و روشده خطاها بزرگی را مرتکب شدند ایشان فرستاده پروردگار خود را نافرمانی کردند بنابر آن خداوند ایشان را به گرفتن بسیار سختی گرفتار ساخت واقعا ما هنگامی که آب بنای سرکشی گذاشت شما را در کشتی برداشتیم تا آن واقعه را برای شما مایه عبرتی بگردانیم و گوش های شنوا آن را خاطر بسپارند و چون به اکبارگی در سور دمیده شود و زمین و کوها از جا برداشته شوند ناگاه به گی به هم کوبیده شوند. پس در آن روز همان واقعی بزرگ واقعی می شود و آسمان شگافته می شود و آن در آن روز سست می و فرشتگان بر کنارهای آن قرار گیرند و هشت فرشته در آن روز عرش پر و تو را بر بالای خود حمل کند در آن روز به پیشگاه خداوند پیش کردن می و از اصرار شما چیز مخفی نمی ماند پس آن که اعمال او به دست راست او داده شود می گوید اینک نامه مرا بگیرید و بخوانید. من یقین داشتم که حتماً به حساب اعمال خود روبرو می شود پس او اکنون در زندگی کاملا قناعت بخشی قرار می گیرد در بهشت برین میوه های آن به دست رس قرار دارد به آنها گفته می شود بخورید و بنوشید گوارا به پاداش آنچه در روزهای گذشته یعنی در دنیا انجام دادید و اما کسی که نامه اعمال او به دستی چپش داده می شود می گوید ای کاش نامه اعمال من برایم داده نمی شد و ای کاش هرگز نمی دانستم حساب من چیست ای کاش مرگ به من خاتم بخشنده می بود سروت من چیزی از عذاب را از من دفع نکرد قدرت من از من از بین دفته است به معموران دوزخ گفته می شود او را بیگیرید زنجیر پیچ کنید سپس او را به آتش کباب کنید بعد او را در زنجیری که درازی آن هفتاد است درکشید بگمان او چنان بود که با خداوند بزرگ ایمان نمی آورد و به دادن مسکین مردم را تشویق نمی کرد آن امروز در اینجا او را غمخاری نیست و نه تعامی دارد جز از چرک و خون که آن را هیچ کسی جز خطاکاران نمی خورد پس قسم می خورم به آنچه می بینید و آنچه نمی بینید که واقعا این کلام رسول صاحب مکرمتی است فرستاده بزرگوار و این هرگز گفتار شاعری نیست اندکی است آنچه شما ایمان می آورید و نه هم گفتار کاهی نیست، and that است آنچه شما پند می گیرید کتابی نازل شده است از جانب پروردگاری عالمیان و هر گو پیامبر بر ما بعضی از سخنان را برمی‌بست بی گمان از دست راست او می گرفتیم سپس شاهرگ قلب او را قطع می کردیم پس هیچ کس از شما نبود که از او حمایت کند بگمان این قرآن پندی است برای پرهیزگاران و ما یقین می دانیم که بعضی از شما تکذیب کننده آن هستید و بگمان قرآن مایه حسرتی است برای کافران و بگمان این سزاواری یقین است پس نام پروردگار بزرگ خود را به پاکی یاد کن